اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الدین و به نام خداوند بخشنده بخشایشگر قسم به انجیر و زیتون یا قسم به سرزمین شام و بیت المقدس و تور سینین و سوگند به طور سینین و هاد البلد الامین و قسم به این شهر امن مکه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم ثم برددناه اسفل سافلین سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم الا الذين ممنون مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است فما يكذبك بعد بالدین هست. چه چیز سبب می شود که بعد از این همه دلایل روشن روز جزا را انکار کنیم؟ آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟